بنابراین پس عشق این اراده به وجود یافتن برای همینه که تجربه عشق تا زمانی که هنوز به ناکامی به تضاد به ادعاوت و کینه و اینا نرسیده تجربه بسیار شدیدی از احساس وجوده برای همین انسان تا زمانی که هنوز قدم روی عشق هست و رو ناکامی ناکامی و نفراد و کینه نرسیده انسان آشق انسانهایی بسیار آرامند احساس خوشبختی میکنن و همین دلیل که مثلا تیپ های جوان معمولا تیپ هستند هستن که یه بیش بیش احساسی دارند مرسوخ های خیالی ظاهری باطنی دارند برای همین ما میبینیم که عموما جوان های اینکی پی جوان های آرام آرامی هستند یعنی احساسی وجود می کنن. احساس وجود میکنن احساس هویت میکنن خب برای همین جوانی قلمرو جوانمردی اماست ببین جوانمرد یعنی چی یعنی سخی دست باز دنیا نیست ببین جوان مردی که میگیم مییم از به عشق میشه. به میزانی که فرق احسااسی وجود میکنه تمام دنیا پررس نیست عشق و نیست وجود رو در خودش احساس میکنه چرا که عاشقی ببینید پس عشق یعنی همان احساس وجود جاویدانه احساس روح به ویان دیگر شما رو در خودش احساس میکنه و رو است جاابدان به انسان احساس وجود جاابانه و جاابدانگی میده در نقطه مقابل مرگ و تباهی رو نیستی. خب. پس ما میشه بنابراین پس الله از دینی ما میفهمیم که عشق تجربه خدایی انسان، تجربه خداشناسی انسان هست و میتونه باشه. برای همین انسان‌هایی که عاشق هستند، اگه در این قدم رو دین‌شناس و دین هم باشند و تقوا پیشه کنند، واقعا انسانهایی هستند که به قدم رو به دین حقیقی، دین خالص و عرفان خان می‌رسند. برای همینه که در ادبیات عرفانی ما میگن عارف عرفان از عشق خاصه و تمام عرفای بزرگ با تجربه های شدید و عاشقانه به عرفان میرسند و به همین اشق از هم دیگه جدای نفذیره ببین این اشق درسته نهایتا به عشق آسمانی و اشق الهی میرسه که عارف کسی که خدا رو در خودش میابه عارف یعنی وجود خود خدا نه اینکه میگه من خدا هم. خدا رو در خودش میابه و خودی دیگه و انتباقه به اون میشه صوفی یعنی یک جلون بود کسی که از دنیا هیچی نداره ولی شاه جهانه عین خدا خدای است. خب اینها هم از تجربه اشخای زمینی بوده با اون اشخای متافیزیکی و قلبی و روحانی رسیدن ما مثالها رو در زندگی انبیا اولیا هم داریم تمام انبیای بزرگ اشخای زمینی شدیدی رو تجربه کردند. حضرت ابراهیم پدر ایمان در اشخش به دو زن سارا و حاجر بود که آن امتحان رو پس داد و از محشور خودش گذشت آجر رو برد در سهرهای عربستان به امر خدا و دل کند از او و به مقام امامت رسید امامت امام کسیست که خدا رو در خودش یافته ببینید بر اساس این تجربه اشق زمینی همه هم این تجربه داشتند. داشتن اشق رسول اکرم رو ما میدانیم چه بوده همه امام همینطور بودند. تمام او رفای بزرگ همین شیخ صنعان در قصهٔ منطق تیر اتار خودش یک نشان و بیان سمبولیک این واقع است که اونا که خاندن می دونن که آن شیخ بزرگی بود یک صوفی و عالم و مشتهد بزرگی بود که بنا ب عاشق شد و عاشق یک دخترک اونم دخترک ترسایی شد و در آن عشق بود به میزانی که اخلاص و تقوا گذاشت و کمال توحید رسید و با قول خودش بعد از واقعه و تجربه اون اشق بود که آن قباری که بین او و فروردگارش هاید بود بر کنار رفت و او با فروردگارش دیدار کرد بس ببینید این عشق همون اشق پایین تنهی میتونه انسان رو در درک و از تباه و نابود کنه ولی اگر عقل و دین عمل کنه میتونه انسان رو به خدا هم برسونه از این عشق از درک و از داره. من که در رسول اکرم که کسی که عاشق شود و اسمت پیشه گزیند هرگاه که بمیرد شهید است شهید در اسلام ما دونیم مقام اولیای خداست پس در اینو ارزش عشق معلوم میشه باز خود از رسول این فرما که الحش کله آداب یعنی اگر بر بر آداب است اگر از آداب خارج شد عشق نیست که سفسه است فقط آداب یعنی آداب دین آداب خرد و تقوا و توکدنی منظور از آداب خب حالا شما این سوالو رو برمودید که مشهور کی مثلا؟ خب از اونجایی که عموما مردها عاشق هستند و زن مشوق و زنان عاشق به میشته خیلی کم بودن و اصلا واقعا یه خودش سؤالی هستند اصولا زن عاشق بوده زن هم اصولا میتونه واقعا عاشق بشه؟ اصلا. یا محشوقیت خودشو به جای به حساب عاشقیت عاشق ببین بعض عشق دو صورت داره عاشقیت معشوقیت خب این خودش یک سوالیه که این رو باعثی از زنها کرد این سوالش ما شما از ما میکنید من باعثی از شما بکنم شما بس با صحبی زن میتواند در مقام عاشق قرار بگیرد یا نه یک دو خب حالا زن با عنوان معشوق این خودش چه داستانی داره خب واقعا از یک تاریخ ادبیات ارفانی ادبیات عاشقان جهان و در. ادبیات عرفان اسلامی فقط خب وسیله مردان نشسته شده و مردان عاشقان دیگه میشه بنابراین ما در این قلمرو ادبیات عاشق شناسی بسیار مبسوط و وسیعی داریم ولی از اونجایی که زنها ننوشتند حالا به چه دلیلی حرف نزدن انذا ما عاشق شناسی منتقیبا میشه که صفر این در روی ادبیات اسلامی و ایرانی واقع نبوده در سر سراسر جهان این خاموشی بوده زنها همیشه در مقام مأشوق همیشه خاموش بودن رضا واقعاً بشر امروز نمیدونه که مأشوق چه جوری چه چگونه موجود است چه می‌گذره ببین شهر هفت شهر اصف مقامات عشق تمام ادبیات عاشقانه و عارفانه ای ما که عالی ترین ادبیات و فرهنگ ماست و اصلا مندبار ترین ادبیات و فرهنگ جهان ادبیات عشق و عرفان است همه در واقع ادبیات حالات مقامات و کم کیف و های مردم بوده این در واقع محشوق شناسی بشر واقعا میشه تقریبا سفر یعنی کسی نمیدونه که محشوق چه کاره و او و خب این واقعا باستیه که که ما رحمت یک زنی شاید بالاخره بگه این رو لازم هست بگه یا شاید هم از جایی که محشوق محبوب میشه در پرده ای اسمت در پرده هجاب بوده حداقل در جهان اسلام از اونجایی که این اسمت و هجاب جزء اصول دین زن بوده خب زن همیشه مجبور بوده خاموش باشه شاید هم هیچ وقتی نیازی نباشه سخن بگه نمیدونم شاید نیاز باشه ولی برحال در قلم روی ادبیات قرد که دیگه این حجب و اسمت اینها دیگه خیلی قداست نداره نویسندگان زن ما در مغرب زمین کم نداریم در همین یک دو قرن اخیر دهان نویسنده خوب و چه دست داشتیم در قدم روی ادبیات و اینها مسلما درباره عشق و مشروعیت مطلب نوشتند من خیلی مطالعات مفصلی ندارم ولی در همین حد و گرفته یک کمی خوندم و شنیدم ترون میتونم بگم که اونهایی هم که در قدم رو به محشوقیت قدم فرصایی کردن من ترون میتونم بگم نفهمیدم بالاخره زن با امان محشوق چبونی موجودیست و اصلا محشوقیت چی حیقتش اگر شما فهمیدید میتونید من امران ماهی بود خیلی متشکرم از توضیحات شما شما در باب از من سوال کردید خب من به عنوان یکی زن معتقد هستم که آنچه که در تاریخ مطرح بوده که مردان همیشه عاشق هستند و زنان همیشه مشوق بر حقیقتی استوار است. برای اینکه واقعا چنین است ببینید شما چهار تا نیاز رو مطرح کردین که تمام عشق برخواسته از همین نیازهای های است شهوت جنسی، شهوت شکنی، عاطفی و فکری و نیازهای شدیدی که در هر کدوم از این غرایز اتفاق میافته، معنای عشق شد اما در مرد بومبانی یک ای عاشق این عشقها در سلطگری و تصرف به صلاح ملموس ملبوس میشه و عمل میکنه اما زن به من معشوق کاملا سیری متضاد رو طی میکنه ببینید زن در اراده به تصرف احساس وجود نمیکنه زن در تصرف شدگی و اراده به تصرف شدگی است که احساس وجود میکنه تمام ارکان غریزی که در مرد اون رو به سمت سلطه به جهان میکشونه در زن درست معکوس عمل میکنه زن از شهوت جنسیش استفاده میکنه تا مرد رو به سمت خودش بکشونه تا مرد اون رو تصرف بکنه زن اگر غریزه شکمی رو مطرح میکنه یا به عمل در میاره فقط به خاطر اینه که مرد رو به پرستیدن خودش بکشونه زن اگر محبتی میکنه فقط به خاطر اینی که مرد رو به پرستش خودش بکشه و یا زن اگر فکری رو ارائه میده فقط به خاطر اینی که پرستیده بشه در واقع از این بابت زن مظهر ایثار و رحمتی ولی هدف زن از چنین ایثارهایی این هست که مانند خدا پرستیده بشه زن دوست داره که در وجود مرد فنا بشه و در چنین وضعیتی است که احساس وجود میکنه ببینید شما بیان کردید که یک عاشق در عشق به غیر خود در واقع میشه گفت که از خودش خروج میکنه و در غیر خود میتونه خودش رو بیابه و در یکی شدن با اون به اون یگانگی برسه زن اینطور نیست یک معشوق در نگاهی که آشق به اون میکنه به ناگاه خودش رو کشف میکنه مثل یک بوت برای همین زنها دختران جوان وقتی که مورد نگاه یک مرد قرار میگیرند، گیرند به ناگاه احساس میکنند که خودشون رو یافتند و تازه اصلا متوجه صورت خودشون، هیکل خودشون و زیبایی های خودشون میشه تا قبل از اینکه مرد اونها نگاه نکنه اونها اصلا اینها رو نمیبینند اصلا وجود خودشون رو کشف نمیکنند فقط عاشقی که با نگاه خودش در واقع زن رو به خودش ارزه میکنه زن پس به عاشق نیازمنده نه برای اینکه به غیر از خودش وارد بشه برای اینکه به درون خودش وارد بشه به عاشق نیازمنده عاشق زن رو به خودش وارد میکنه. و زن در نگاه خودش خودش رو مثل یک بط قابل پرستش می‌بینه، مثل یک یکبطوت زیبا از از چشم عاشق ولی و. هر چقدر که عشق عاشق به زن بیشتر باشه طبیعتاً پرستشی که زن در قبال خودش پیدا میکنه بسیار شدیدتره. با و اینجا با تفاوت این به صلاح دو صورت عاشق و معشوق ما باید این رو بگیم که اگر ما صحبت رشد می کنیم، در مورد زن رشد کاملا متفاوت رشد در عشق زن زمانی که بتونه از تصرف شدگی خودش به صلاح دست برداره و به سمت اراده به تصرف بره میشه گفت رشد کرده یعنی از خودش خارج شده زن تا زمانی که فقط خودش رو به عنوان بت قابل پرستش میدونه در خودش مدفون میشه خوب ببینید در طول تاریخ زن برای پرستیده شدن ابزارهای متفاوت یا شکلهای متفاوت و کردارهای متفاوتی داشت عموما زنهای سنتی از شهوت جنسی و نیاز جنسی همسران خود و کلا مردان و نیاز شکمی مردان خود استفاده میکردند تا مردان خود رو به پرستش وادارند اما از زمانی که در واقع ما با جهان آزادی روبرو شدیم که مردان میتونند این نیاز جنسی و نیاز شکمی خودشون رو در روستی خانه ها و در رستوران ها ارضا کنند زن مجبور شد برای محبوبیت و جلب توجه نگاه مردان ابداعات جدیدی بکنه و به سلاح جنبه های از وجود خودش رو استخراج بکنه در حقیق قدم بر بالاتنه بگذاره بله قدم بر بالاتنه بگذاره ارادی زن مدرن امروز برای ارائه فکر، هنر و یا همگام شدن در علوم و فنون و کلن جنبه های مردانه از بابتی همون ادامه پرستیده شدنه زن به میزانی که در جنبه جنسی و شکمی دیگه نتونست مرد رو به پرستش خودش واداره، به سمت این جنبه های مردانه رفت تا با رقابتی که با مردان میکنه. به نوعی باز هم اون نگاه اونها رو معتوفه به خودش بکنه و میشه گفت که اگر ما بخوایم این روند رفتاری زن رو اسم گذاری بکنیم این اسمش نازه ببینید اون عنصری که در زن عمل میکنه تا مرد رو به خودش متوجه بکنه در بیان آمیانه و قابل فهم برای همه اسمش نازه زنی که داره قضایی درست میکنه مطلوب شوهرش تا شوهرش اون رو بپرسته اشد نازش رو در غذای خودش وارد میکنه زنی که خودش رو سکسی میکنه تا شوهرش یا مرد اون رو بپرسته اشد ناز خودش رو در کردار و رفتارهای تنازانه وارد میکنه و الان ما این اشد ناز رو در هنر در فکر، در علم زن هم به طور واضح می تونیم ولی ما در دوران آخر زمان هستیم. دوران آخر زمان دوران ناکامی هاست، دوران شکست هاست و زن در ناز خودش شکست کرده. زن تمام جنبه های وجودی خودش رو به عرصه نمایش قرار داد. اگر الان ما با برهنگی زن به طور آمه و اینچنین فراگیر رو به رو هستیم به خاطر اینکه زن دیگه تمام تن خودش رو هم اوریانت کرد تا شاید مردی اون رو نگاه بکنه اما شکست زن در چنین وضعیتی اون رو کاملا از ناز خودش معیوس کرد و زن امروز زنی است که جز کینه و انزجار نسبت به مرد چیزی در دل نداره و حاصل این کینه و انزجار مکتبی است به نام فیمینیزم مکتبی که زنان در آن نعره میزنند از باب اینکه ما به مردان نیاز نداریم و خود برای خود کافی هستیم چنان این فریاد این فریاد از کینه است از بینیازی نیست از بینیازی نیست از, از, فرط از فرط کینه و ناکامی و شکسته زن وقتی که دید حتی تا تنه برهنه اون رو هم مرد بهانه میده تون همه تنها برهنه شده بود اینجا دیگه تمام وجودش کینه شد و به جنگ مردان پرداخت و نام این جنگ رو فیمینیزم گذاشت به عنوانی که اصلا من اصولا به مرد نیازی ندارم ببینید زن برای اینکه بتونه به خودش دست پیدا کنه نیازمند نگاه مرده زن اگر در زیر نگاه مرد قرار نگیره اصلا وجود خودش رو کشف نمیکنه. ببینید اولین بر اینکه این بیان به صلاح واضح تر و ملموس‌تر باشه این رو هر زنی میدونه زن به میزانی که نگاه میشه خودش رو میره در آینه نگاه میکنه. مثلا زن اگر از صبح تا شب شوهرش به خونه نیاد یا مرد اون نبینه خودش هم میره تو آینه خودش نگاه ولی وقتی میدونه که شوهر شب میاد و اونو نگاه میکنه به این دلیل میره خودش تو آینه خودش رو نگاه میکنه در واقع باید گفتش که زن در آینه از چشم مردی به خودش نگاه بله، میکنه کاملا صحیح. نه از چشم خودش یعنی زن خودش برای خودش هیچ نام و مفهوم و دریافتی از خودش نداره حالا ما از تن شروع کردیم این نگاه به تمام جمعه های وجودی زن میتونه باشه اگر زنی به سمت دین و ایمان میره زمانی که میدونه مردی به واسطه دین و ایمان اون رو نگاه خواهد کرد ببینید من دین و ایمان رو بسط کشیدم تا ببینیم که این جنبه در زن چقدر عمیقه اما این همتون که گفتیم یک قریزه است در زن پس به میزانی که قریزیه جانوریه حیوانیه بله بیس ولی انسانیت زن نیست زن اگر بخواد از حیوانیت خودش خروج بکنه تنها راهی که داره اینه که بر این میل به محبوبیت و میل به تصرف شدگی خودش فائق بیاد یعنی بر چه چیزی فائق بیاد یعنی بر ناز خودش فائق بر پرستیده شدنش بر پرستیده شدنش توسط مرد زن زمانی که بتونه قضایی رو برای همسرش بپزه نه به این دلیل که شوهرش اون رو بپرسته بله که به این دلیل که شوهرش رو چون دوست داره این غذا رو بپزه اون موقع میگیم میتونیم می بگیم این زن از قرایز خودش فراتر رفته و در عشق به رشدی رسیده در قرآن اومده که زنان شما دشمن ایمان شما هستند. ببینید این بیان همینه. زن به میزانی که به باسطه نازش که در پوشاکش، در غذاش و در محبتش و در تمامی رفتارهاش حاکمه میخواد مرد رو به پرستش خودش واداره یعنی میخواد چکار کنه؟ یعنی میخواد به مرد میگه به جای خدا منو بپرست. دقیقا نمیجاست بره. و مردی که به ناز زن پا میده و به ناز زن بها میده در واقع در واقع به کفر خودش بها داده در واقع داره کافر میشه در واقع داره کافر میشه و زن رو هم اجازه نمیده که رشد کنه اگر زن در چند حرکت و در چند تا از این ناز و غمزه ها متوجه بشه که اون مرد محبوبش اون رو به خاطر اون خورش یا به خاطر اون پوشاک یا به خاطر اون کردار اشوگرانه نمی مجبور میشه که دست از ناز برداره و شوهرش رو برای خودش دوست داشته باشه نه اینکه به خاطر اینکه اون چقدر زن رو دوست داره و مردی که فقط بخواد بر ناز زن رفتار بکنه هم خودش خودش رو کافر کرده هم زن رو کافر کرده اگر ما در قرآن داریم که تنها در یک مورد مردان گفته شده میتونید زنهاتون رو بزنید که این همیشه برای زنان ترخ بوده که چرا در قرآن چنین صحبتی شده و چنین آیه اومده ببینید زن اشد ناز خودش رو در رابطه جنسی داره چون شدیدترین نیاز مرد نیاز جنسیست پس زن بیشترین محبوبیت و پرستیدت شدن رو میتونه در اون جایگاه برای خودش داشته باشه زنی که بخواد از این نیاز جنسی شوهرش استفاده بکنه و اون رو به قحطی بندازه بده واسطه ناز و کرشمه تا مرد رو به چاپلوسی خودش به و به کابوسی خودش امه. و به پرستش خودش واداره که اگر میخوای من این رابطه رو با تو داشته باشم باید من رو بپرستی و مرد هم اگر چنین بکنه این مرد هم خودش رو تباه کرده و هم زن رو در غریزه و در همون عشق قریضی تباه کرده ولی مردی که به این ناز زن بهان نده و با تنبیه اون رو از این ناز خارج بکنه هم به دین خودش کمک کرده و هم زن رو از گمراهی نجات ده چرا این مادر واقعا میشه گفت درستی همسرشو به مولایک انسان دوست میداره بله نه به عنوان یک ابزار جنسی نه با عنوان یک ابزار سکسی که فقط میخواد نه. اونجا احتیاجش برطرف بشه نه. و میگه خب حالا این زنه من میگه آقا به من به قربونت برم حالا من میگم حالا من این بیان عاشقانه رو میدونم که دروغه اونم میدونه ولی خب فعلا منو مجبور کرده و من هم در شرایطی هستم که این بیانهای عاشقانه رو براش میگم ازش تعریف میکنم تا نیازم برطرف بشه بلکه نیازم برطرف شد چهار تا فحش بهش میدم این چیزی که الان در جهان امروز بسیار رواج داره و زنها مجبور میشن کینه و کینه شدیدتری پیدا بکنند و بر ناز و کرشمه های خودشون بیشتر بی تا بالاخره مرد رو وادار کنند که حتی به تملق و دروغ هم که شده اونها رو ستایش بکنه در حسرت معشوق پس کاملا متضاده شده. مشوق میخواد محبوب و پرستیده بشه و در این صورت هست که به کمال، در این صورت هست که نیاز قریصی خودش ارضا شده و زنی که بتونه بر این تصرف شدگی فائق بیاد و در بیرون از خودش عاشق مردی بشه چنین زنی زنیست رستگار زنیست مؤمن و زنیست که دلش رو کینه و انزجار پر نکرده و فیمینیست هم درش راهی نداره من بیشتر از این نیگه توضیحی در باب محشوق ندارم لطف کنید اگر شما توضیحی دارید بفرمایید. خب بنابراین برای جنبندی از صحبتهای شما من نمید اضافه بکنم که واضح شد که زن در هر چهار قدم رو به مشروعیت خودش و بروزهای عشق زنانه که امون نازه هست تماما در قلم اراده به پرستید شدن از جانب مرد همچون خدا نه حتی یک ذره کمتر از خود پس واضحه که این قلمرو رو تماما کفر زنه و سراغازه تو زن تو از نازش از یک ناز ایمان و دین و معرفت زن تماماً سلسله مراتب و درجات نبرد او بر ناز خودشه تا بتونه رابطهش رو با همسر خودش فقط و فقط بر اساس رضای خدا که همان احکام دین خدا و وظایف هست انجام بده و فقط این گونه است که این رابطه از اون قلم روی کافران خارج میشه از اون قلم روی جمعونی که عاقبت جز نفرت و کینه نداره خارج میشه از قلمرو روی اون عذاب نار خارج میشه و واقعا قلم روی رشد و تعالی زن میشه این بحث البته این بسیار مفصلی است ما هم بطوری مفصلتر از این و دقیقتر و دقیقتر از این در جتا. کتابتون ماده وجود و کتاب تربیت عرفانی مسائل رو تقریبا توضیح دادید. خب ما با امان جنبندی هم که شده یک باردگی مرور میکنیم که به بحث رو این بحث که واقعا انتها نداره و نیز تنوع بسیار کسیری داره. همه مهور رو بر عشق بین نظر و مرد قرار دادیم که قریضی و اساسی ترین هست ببینید یک بار دیگه امروز کنیم گفتیم که عشق این عشق به غیر اینه غیر حتی میشه گفت همه تو که در رابطه به نظر و مرد میگیم عشق به جنس مخالفه جنس مخالف یعنی واقعا نوع مخالفه یعنی ضد این اینه واقعیته انسان در قلم رو به عشق قریضی خودش عشقای قریزی خودش ببین قریزی که میگیم فقط پانیتنم نیست عشقای آتیفی و حتی فکریم قریزی تا, جم... تا زمانی که اماره و تصرف کننده است قریزی حیوانیه جهان و آدم از بله ما گفتیم که عشق انسان حتی به عشقی هم نهایتا به آدمخوری میرسه چون هدف آدمی زیرا انسان که اسیر جهل و کفره در واقع اسیر عدم و نابودی خودشه هنوز اون روح، اون روحانیت و نور رو در قلب خود نیفته هنوز از دیر عدمیت و احساس نابودی خودش هست چنین انسانی انسان قلیزه که از طریق روح دیگران و خوردن وجود دیگران از این طریق صاحب روح و وجود بشه این آدم خودی این روخاری ببینید؟ این روخاری انسان در واقع میشه این وجود دوزی از یه لازمی گفت این نوع عشق غریزی و کرکرانه در واقع میشه گفت آدمخوری خوری و وجود وجود دزدی وجود دیگران رو دزدیدن و به حساب خود گذاشتنه و چنین چیزی میسر نیست امکان بزیر نیست نممکنه درست به همین دلیل این عشقا یه غریزی که تماما اشقای اماره و تصرفی هستند قلمرو رو به ناکامی های شدیدتر و قحتی زدگی های شدیدتر و, احساس نابودی شدیدتر لذا کینو و و عذاب و نار میشه اگر عشق این عشق به غیر در واقع الازم منطقه این عشق به زد خود انسان جایی نمیشه عاشق ناخدا و عاشق زد خودش میشه حتی در رابطه بین یک زن و مرد، حتی در قلم تمدن جدید که قلم روی مراوده و مکالمه و تفاهم قبل از ازدواج وجود داره بادن و مرد که با مکالمات و روابطی که از دار ازدواج دارن میتونن کاملا دیار بشناسن و به اساس تشابهات ازدواج کنن لذا عین هم باشن، کوپی هم دیگه باشن و در سل و سوا زندگی کنن اتباه هر اونهایی که بیشتر بر این فکر ترکید میکنند وقتی ازدواج کردن دو روز که گذشت اون تشش شعبت خوابید هر یک به ناقابل که تمام اون تشابهات انگار خیالی بیش نبود هر کسی طرف مقابل رو درست زده خودش میبینه و لذا هر کسی تومت میزنه به طرف مقابل که طرف کلک زد اول تظاهر کرد که این منه حالا معلوم شد که درست زده منه همه این داستان رو دارن این بر واقعیتیست. این واقعیت اینه هیچ کس کلک هر هرچند که این کلک هم باب هست ولی مسئله اساسیده از این کلکه انسان کل غریزی و کافر و جاهل تا زمانی که به اون نور ایمان در خودش با قدم رو روشنایی و بیداری نرسیده همیشه جذب ضد خودش میشه و یا جذب دشمن خودش میشه این که قرآن نگهی انسان دشمن خیشتانه است درست به این معناست همیشه جذب ضد و دشمن خودش میشه اتوماتیک. هرگز این محاسبات ذهنی نمیتونه در این قلمرو به انسان کمک کنه داستان از تفسیر منطقی مثل یک جادو و یک تلسم شدگی میمونه برای همین قلمرو اشقا غریضی قلمرو واقعا تلسم و جادوست. برای همین مردمان با تجربهتر پیرتر کصار که میشن میگن در دیوانه است این اشغا رو قلمرو جاهلی و جنون میدونند و واقعا از یک درست هم هست خب اگر عشق نیشق به غیر و بلکه عشق به ضد خود خوب غیرترین موجود نسبت به انسان کیست و چیست اللازه فهم حسی و ذهنی خداست درسته؟ به هزاران هزار داریم یک دلیل اساسی معرفتیشونه که انسان ظرف عدم همش اسیر وحشت مرگونیستیس خدا اصفه جاودانیگی و وجود مطلقه پس اینا زده همه دیگه تو درسته؟ و لازه غیر بودن قیل یعنی دور بیگانه دیگه خدا هم غیرترین و بیگانه ترین موجود نسبت به انسان حساب میشه اللازه فهم زینی و حسی دیگه دست دستسترین دست و نامحسوس ترین و نامفهوم ترین و نامرگول ترین موجود به نظر میاد دیگه از زین این طور حالان که برای همینه که خدا رو هرگز در قلم روی زهنیات نمیشه چناخت و فهمید و فرستید برای همینه ایمان امریست قلبی خدافرستی امریست قلبی خداشناسیم امریست قلبی خب درست به هم دلیگه از داری من به میزانی که از ایشان صحابه میکنند که شما چگونه به خدا رسیدید؟ میگه من همواره بر خلاف نفس خودم عمل کردم یعنی بر زد خودم عمل کردم به خدا رسیدم خدا به مفهوم خود خود هستی مطلق ببینید؟ خدا در قلم روی دورترین و بیگانه ترینه در روی قلب خود خود انسانه خب این همین مفهوم است. از این لاز این بحث نبته بسیار مفصله تقریفان اسلامی مقوله به این صادقی ها قابل توضیح منطقی نیست همینقدر فقط این اشاره ما کردیم خب به جنبی دیگری از این بحث برسیم که مسابقه جنبندی ما باشه اینه که پس واضح شد که این اشقای قریضی از نوع زیر کمی و کمی تا عاطفی و حتی فکریش تا آنجا که اماره است میل به تصرف و سرسد داره کور قریضی و جاهلانه است و همواره هم جبرن ناکامه از نوع عقیدتی و ایدولوژیکیش گرفته که میل به تصرف و و حبری بر مردم داره تا جنبه عاطفیترش گرفته که بیشتر در قلم رو هنر خودشان رو میده هنرها. تا در قلم روی شکم و زیر این نوعی همباره ناکامه و معکوم به ناکامیه و انسان رو به قحطی زدگی هزار برابر شدیدتر از قبل میرسونه اون زدگیه این قحطی زدگی یعنی احساس نابودی این همان قلم ظهور آتش که کینه و انتقامی هستش که در انواع اقسام این عشقا خودشون نشون میده. و اما حتی لازم انطقیه ما عشق دیگری داریم که از نوع دیگری است عنوان عشق ایساری که هر چه قلم روی رو می در بگیره بگیله عشق ایساری خب عشق ایثاری واضحه از همون لاغتی که روش هست یعنی عشق تقوائی،, تقوائی یعنی خیشتنداری و از خود گذشتند در نقطه مقابله بل اندگی و تصرف و نیست. ام. خب حالا این عشق البته بسیار بسیار, بسیار کمه به عشق مؤمنان و مخلصین و انبیاء و علیاء و صدیقین و قدیسین بوده این عشق ایساری و آنها بشری بودن مثل همه. آنها هم عاشق میشودن و همین در قرآن که اموران هم آقا بحشتی هستن مثل وقتی هیچ فرق نه اونا همین قراریزه دارن آنها همین عشق قریضی تصرفی رو دارند ولی بر علیهش نبرد میکنند که همون جهاد نفس ولی که همون جهاد بر علیه نفس همون جهاد اکبر هست از جهاد اکبر که تنها جهاد انسانی انسانه و قلم رو به رشد و تعلیه انسانه جهاد اکبر این نبرد بر علیه عشق چه تصرفی فرق بنده اگر من globeander گذید فرقی یک علامه یک فیلسوف هم باشم اگر بواسطه با بواسطه این علم و هم, هم قصد تصرف و سلطه و ریاست داشته باشم این فشخ کول کافرانه و زوار ناکامه و به ادابت و پوچی و تباهی و به جهنم انجمی هیچ فریندی نیست این اشخاصی که ما دیدیم اسمش ظاهرا خدمت به خلق بوده ولی حنف بدنی سلطه و احاطه و رهبه ای برخواه بوده چون اثر نشده همین آشغان قلق بنابرای دشمنان قلق در آمده و مطمئه قلقه ها قتل آم کرده ببین اینا دیگه معنوی ترینش این شکلیه دیگه مدیترین و قدیترینش واضحه بله این مشخصه بابنه بنابراین این عشق در نقطه مقابل عشق تصرفی آن نوعی از عشق هست که این گوهره عشق رو به عنوان اراده به وجودی یافتن اراده به جاودانگی و اراده به یگانگی فقط عشق ایثاریه که ممکن میکنه گام به گام ممکن میکنه. و انسان رو گام به گام بر آستانه وجود احساس وجود احساس جاودانگی و نیز یگانگی و وصال انسان هم با خودش ما گفتیم عشق رو جاذبه بین خود و خدا می دیگه من و خود خودم خود خودم هر کسی بقول نی از خداست ندر آسمان در داره زات و قلب فقط عشق ایثاریه که انسان رو گام به گام از خودش به خود خودش میرسونه و این دوگانگی برمیخیزه و یگانگی که همان وجوده همان خداست در انسان گام به گام برسه ظهور و تجلی و بر قلمرو حیات و افعال و صفات انسان وارد میشه که روی بنیازی نسبت به غیره این عشق شدید در یوزگی اشراط اشد نیازمندی و در یوزیگی انسان به پای غیره.